شه 1 نزدیکی های عید بود آخرهای اسفند یکی از چیزهایی که هیچ وقت ازش سر در نیاوردم این است که چرا نزدیکی های عید همه جا این همه شلوغ می شود خیابان ها مغازه ها، جاده ها تا حتی پیاده روها هم قیامت می شود توی خانه ها هم که هر کدام دو سه برابر روزهای عادی آدم می میاد منظورم دقیقا این است که این همه آدم یک بارگی از کجا سبز می شوند؟ آدم از آن چیزهایی نیست که بشود صادات را وارد کرد. گاهی قاچاق می شود ولی وارد کردنی نیست؟ واسه همین شلوغی قرار شد پنجشنبه یک ساعت زودتر راه بیفتیم که دیر نرسیم. برای آن روز لباس قرمزم را پوشیدم شاید ندانید ولی لباس قرمزم بهترین چیزی بود که برای پوشیدن داشتم. دوتا جیب روی سینه ها داشت با دکمه های مارک بزرگ روی شانه ها هم یکی یک دانه پاگون ارتشی داشت که بدک نبود خیلی وقت بود که داشتمش اما هنوز هم بهترین لباسم به حساب می آمد اما چون تک و تنها باره همه مهمانی ها و عروسی ها را به دوش می کشید کم کم داشت نخنما می شد شلوار جین آبی هم داشتم که از حیث و رو داری هیچ کدام از هیچ کدام سر نبودند از حساب و هم همینطور. اما شلوار تو این دور زمانه خیلی چیز مهمی نیست. اینقدر جنس رنگپریده و پاره پوره در که بدون اینکه توجه کسی جلب شود، می شود هر چیز بنجلی را به اسم مد پوشید. به کلم زده بود که کشف های حسن را هم ازش بگیرم. کشف های حسن از نظر کاربردی توی وسایلش مثل لباس قرمزے من است. ترین چیزی که تا همین حالا توی خاندانشان دیده شده بود. از این کفشای کالج جیر دوردوزی شده لاکردار ایتالیایی اصل بود بسش همافافصل است این کفش اول اولش برای صاحبکار داماد حسنین ها بود که از ایتالیا برای برادر خودش سوقاتی میآورد هر چه می کنند پای یارو توی کفش ها فرو برود نمی رابد. او هم کفش ها را راه رضای خدا به داوود داماد حسنین ها میدهد. حالا هیچکس هم نه داوود. نمره پای این بنده خدا چهل و پنج است و از همان اول هم تابلو بود که کفشها به پایش برو نیستند. داوود هم که کس و درست و درمانی ندارد آنها را به حسن میداد روی همین اصل هم یک مدت حسن را حسن سیندرلا لا صدا میزدیم اگر کفش ها را ازش میخواستم نه نمیگفت، ولی ترجیح دادم خودم را بی خود سبک نکنم حتما پیش خودش میگفت که چه شده که دارم تیپ دامادی میزنم به سه شماره دستم رو میشد. گذاشته گذشته از این اگر با کسی توی خانه قرار گذاشته اید، کفش آخرین چیزی است که باید برایش جوش و جلا بزنید. چون همان اول کاری کارتان تقریبا باش تمام است. اینجور جور وقتها داشتن یک جفت جوراب خوب خیلی مهمتر از کفش است. هنوز ساعت دو نشده بود که رفتم جلوی در. یک کمی بعد حسن هم پیدا شد. با همان تیپ مدرسه اش آمده بود. حتی نکرده بود که خودش کفش قهوه‌ای هاش را پا کند. حسن گفت: بریم عباس. بریم. هنوز به سر نرسیده بودیم که نگهش داشتم. از الان گفته باشم نریم اونجا دب دراری. درست نفهمید که چه بهش گفتم گفت دب چی چه میدونم بری اونجا برگری بگی لاله نهیمت و این حرفا جدی جدی از دستم کلاف شد ولی بهش رو نگرفت گفت عباس فقط نریم اونجا دوباره از بازی در بیاری یعنی چی کار ببین این دفعه چهارمه داریم اردک میریم و غاز برمی برمیگردیم جون مادرت امروز یه سرش کن یا اینوری یا اون وری. وگرنه از این تو اون ور جوب من این ور جوب یعنی دیگه لاله بی لاله عباس میگیرم وسط خیابون خب خب خب خب بریم بریم دیر شد از همه جا نشستیم برای گمرک عجب ماشین لکنته کلافه هم به پستمان خورد بوی گاز و روغند بجور توی ماشین پیچیده بود یک بوی گنده دیگری هم میامد که نمیشد گفت مال چیست آنقدر بو گنده بود که حتی حسن هم توجه شد آمدم راننده اعتراض کنم که یک بارگی متوجه بوگیری شدم که روی آینه جلوی ماشین داشت برای خودش تلو و می‌خورد. میخورد هر چهار تا شیشه ماشین هم که تا ته پایین بود توقع داشتی چی به طرف بگویم خودش گوشی دستش بود عوضش عجیب دست فرمان معندکی داشت گازش را گرفته بود و لای پشت لایی می‌کشید. پیپ بی پ روی هوا رانندگی میکرد سر پیچ ق از جلو یک اتوبوس شرکت واحد اللا رد کرد حسن از ترسش به صدا آمد. یه خورده آروم تیرمویی رد کردی یا نزدیک بود بزنی به جدول؟ این بدترین حرفی است که موقعی ترس میشود به همچون راننده های ازگری زد. یارون رونیش خندی زد و درآمد که مثل اینکه تارا و بچه های خطماننیومدی بخوای به این ملت را که نصف شو نمیرسی. راه نمیرن که آه بیا این یکیو ببین؟ انگار داره شطور میرونه انطر ریغماسی. دیگر دست بردار نبود انگار تخم کفتر خورده باشد یک ریز ونگ میزد جوان بود ولی از اینهایی که وقتی پیر شوند اعصاب برای یادم نمیگذارند سر پله مامزد مأسوم یک خانم هم سوار شد و روی صندلی جلو نشست پید خودم گفتم که شاید دولتی سر این خانم بیخیاد شود ولی افاقه نکرد برای همه ماشینها بوخ چراغ میکرد و راه میگرفت بیشتر مردم هم در جریان بودند که باید به همچو الاقی راه بدهند فقط قبل از پال نواب یک بابایی راه خودش را گرفته بود و میرفت. این این هرچه زد آن راه نداد. اولش خیال کردم که یارو قصد آزار اذیت خیابانی دارد ولی او هم یک جور دیگری بیشور بود. توی لاین سرعت انداخته بود و با چهل تا سرعت می رفت. راننده ای ما با یک بدبختی راه گرفت و بقل به بغلش کرد و داد زد یارو هیچی به هیچی؟ سرش را از شیشه ماشین بیرون کرد و صداش توی سرش. ای گاری چی؟ سر سرخ هر بگیر اونور، نوالی! وای واتام! ای تو روح اون سرهنگی که به تو تصدیق داد. پیکانی هم یک شاهی معلش نمیداد سرش رو دو مرتبه تو کرد و دوباره شروع کرد به قرون کردن. این همه خر اینجا است، بازم ایران از قبرس وارد میکنن خر خره، چه قبرسی چه بندری. <محن> معلوم نیست از کدوم تویلا در رفتن. به خدا نباس کاه باره اینا کرد. ما که هیچی نگفتیم؟ خودش هم چند ثانیه ای خفه خون گرفت ولی آرام نمیگرفت که انگار که یکی از پایین به سی خونک بزند مدام روی صندلی مثل خیک جابجا میشد. حیف که خانم تو ماشین نشسته وگرنه خوب میدونم جواب این نسناسا رو چه جوری بازداد؟ جوری گفت: خوب میدونم انگار که از چیز خیلی مهمی خبر داشته باشد. تازه آن همه فوش به نفع یارو بسته بود و باز هم به خیال خودش آن خانم را کرده بود. بر خود کشانی بود رسیدیم پیاده شدنه چون تمام لباسم بود کثافت گرفته بود یک اسکناس 500 رو از وسط نصف کردم و لوله ای دادم به یارو نفهمید عجیب است که اگر پول گوشه نداشته باشد فلفور میفهمند ولی اگر نصفش نباشد انگار نه انگار هزار بار تلاش امتحان کردم دم در خانه که رسیدیم به حسن گفتم که ادرکلان دارد یا نه که جوابش مثل روز برایم روشن بود خود اسکندر باز کرد عجیب بود که مثل قبل عاجزان سلام نکرد شاید بوقورته بود که از من آبی برایش گرم نمی نمی‌شود حوضش من که کلی باهاش گرم گرفتم حتی یادم هست که برای دیده بوسی هم خودم پا پیش گذاشتم که شک برانگیز نباشد بالا رفتن پلههای بینرده خانه شانان چران حواسم را پرت نکرد ولی به محض اینکه توی پاگرد چشمم به توالت افتاد دو مرتبه اعصابم مگسی شد فکر این که اینها چطوری توی یک اتاقه که شیشهای سر خودشان را سبک کنند هنوز هم که هنوز از هم می میکند داخل اتاق فقط سروش بود بدک نشد چون حالا حوصلهأ هیچ احمق دیگری را نداشتم من را كه از روی تخت بلند شد و از آن سر اتاق بدو بدو توی بغلم پرید یا رب العالمین ادامهٔ آن وضعیت با سروش دیگر غیرممکن بود پسر هیچ چیزی را در نظر نمی گرفت. ره بهره میچسبید به آدم فکر کردم که اگر سری بعد قصدش کارش را تکرار کند با زانو شکمش را نشانه بروم اما آنجا کاری نکردم صبر کردم کارش که تمام شد خودش خود به خود کنار کشید آرام تنگ گوشه هستن گفتم لاله کوباز. جوابم را نداد به جاش همین سؤال را بلن بلن از سروش پرسید لاله اینه چرا دارم میان؟ دو راهن؟ باز هم توی راه سری پیش هم که ما را توی خیابان کاشته بود همین حرف را میزد و این مسئله اصلا نمی توانست اتفاقی باشد آنی دستگیرم شد که باید چه دختر بد قولی باشد قبل از اینکه کسی بخواهد جایی برای نشستن به امتحارف کند خودم را رو رو روی تخت پرتاب کردم. اگر دوباره دیگر عین همان کار را تکرار می کردم، فنرش از زیر در میرفت تخت چنان جیری کشید که اسکندر فوری سرش را به طرفم برگرداند ولی حرفی نزد هرچه میخواست بگوید دعوا راه میفتاد. یک نقشه ای ایران خیلی بزرگ روی دیوار بالای تخت چسبیده بود. خیلی عجیب بود که سری پیش متوجهش نشده بودم. شاید هم تازه ترتیبش را داده بودند. چند تا پونز رنگی رنگی را گله به گله در چند جای نقشه فرو کرده بودند. از پونزها که چیزی سر در نیاوردم. اما حاضر بودم هر دوتا دستم را روی قرآن بگذارم که اگر طرحش برای اسکندر بوده باشد خالی از حالوگیری نیست. پرسیدم. مجید جان اینا چیه؟ کدوما اینا؟ کدوما این اینگو که روی نقشه است. آن این پونهزار میگی اینا مربوط به رشد مجموعه است شرای که توشون زیر مجموعه دارم و با این پونهزار علامت میذارم. شمردم سرجم هفت هشت هایی میشد که روی آستارا و تهران و گم و سااب و سه جای دیگر علامت گذاشته بود. تازه چندتا پونه هم برای کشور گشایی زیر نقشه ردیف کرده. بود. گفتم، ایوه، یعنی توی همه این شهر برای خودت زیر مجموعه دست و پا کردی؟ جوری همین حرف را زدم که ناخود آگاه ازم خوشش بیاید خیلی پر غرور با انگشت اشارش دور پونزها یک دایره فرضی کشید و گفت آره، تو تمام این شهرها نفوذ کردیم حالا از دو سه روز دیگه بچه های دست باغر قرار طرفهای جنوب یه دست جدید استارت بزنن انگار که بچه ناف جنوب باشم گفتم. عجب کجای جنوب؟ چابهار بارو بابا حال نداری چابهار که توی شماله چابهار توی جنوبه سیستان اون طرفا؟ خودتی شماله شمال کجا بود؟ چابهار میشه و با انگشتاش روی نقش دنبال چابهار گشت اینجاست؟ اینها توی سیستان و چستان؟ را خالی نکردم شمالم یه چابهار داره که خیلی هم سر خرگی رو رووردی؟ اسکندر نگاهی به سروش انداخت ولی آضای او هم چنگی به دل نمیزد. پاک گیت شده بودند. با اینکه همان موقع میدانستم که دارم زر میزنم ولی کوتاه نیامدم از تهی قلبم خوش داشتم که یک چابهار هم توی شمال باشد حداقل اسمش که بیشتر به شهرهای شمالی میخورد تا جنوبی. اسکندر دیگر دنباله بحث چابهار را نگرفت گفت. بچه های دست سروشم الان دو سفت است که دارن روی شعرکورت کار میکنن. سروش با شنیدن این حرف بدون اینکه که حواسش به فک خرگوشیش باشد نیشش را باز کرد و گفت آره دیگه ایشال از این ویکند خریدشون رو انجام بدن استارت میزنن. اسکندر لبخند دندان نمای زماختی زد و با کف دست دو سه بار روی نقشه کوبید و گفت امید فتح همه ایران. از روز اولی که این پسره را دیدم، خدا خدا میکردم که اینقدر که قیافش نشان میدهد ابله نباشد. ولی می که احمقانه ترین حرفها را با همین اعتماد به نفس میزد به مرگ مادرم اسکندر مقدونی هم مثل این بابا در مورد فتح ایران اینقدر با حرارت حرف نزده بود. جا به جا توی ذهنم اسمش را گذاشتم اسکندر. البته به شرط اینکه که هر وقت اسم بهتری پیدا کردم، عوضش کنم. اینجوری خیلی راحت دیگر نخواستم راجع به مسئله پنس ها حرفی بشنوم پشتم را به نقشه کردم و روی تخت به همان دیوار تکیه دادم خیال میکنید این طرف چه خبر بود؟ هیچ؟ همان دیوار ترک خورده ترسناک بود و آن جوراب های چنبله که راجع بهشان گفته بودم کثیفتر شده بود که تمیزتر نه تمام کسانی که اتاقشان این ریختی است همیشه به صرافت میفتند که خیلی زود با آدم خودمانی شوند که بعدش هر دفعه مجبور نباشند کلی تمیزکاری کنند گرچه گمان نمی می‌کرام که سروش روی این اصل توی بغل کس آکس بپرد ولی دست کم اسکندر که همجوری آدمی بود 20 25 دقیقه گار روی همان تخت نشستم ولی خبری از لاله نشد هر کسی هم توی اتاق کار خودش را می کرد تا اینکه صدای زنگ در بلند شد سروش کرد اش را از پنجره بیرون کرد و فوری سر جایش برگشت سرجم سه ثانیه طول نکشید گفت لاله معنازل من میرم میارمشون بالا رفت و همان جور که قولش را داده بود با لاله و مهناز برگشت. برای یک لحظه لاله را نشناختم. لاکردار تیپش را از فرق سر تا ناگهپا کن, کن کرده بود. به ترتیب با اسکندر و سروش سلام احوال پرسی کرد. فقط شانسی که آورده بود سروش نمیتوانست مراسم حال و احوال مخصوص خودش را به روال عادی با او برگزار کند. چه با او چه با مهناز. در واقع تنها کسی که توی آنوان افسا توانست مهناز را ببوسد اسکندر بود میدارید چرا؟ چونکه که نام زدش بود تازه آنجا برایم کاشف به عمل آمد که لاله در اصل دوست مهناز است و از طریق همین مهناز به این منجلاب کشیده شده است مهناز در حالی که با و غمیش داشت روی صندلی چرخان کنار کامپیوتر مینشست به حسن هم یک چطوری خیلی یخ گفت که اگر من جای حسن بودم اصلا جوابش را نمی دادم. اما حسن گفت خوب حالا یا از قیافه من خوشش نیامده بود یا چی که به من حرفی نزد عوضش لاله تلافیش را در به بهبه عباس آقا حال شما قربان، لحنش خالی از عشو و کرشم نبود فشار کلامش هم بیشتر روی لغت آقا بود تا عباس انگار خواسته باشد من را در مورد آقا بودن یا نبودن به شک بیندازد در جواب لاله اطمینان دادم که حالم خوب است. و لازم نیست که نگران چیزی باشد اسکندر سرش رو برای حسن تکانکی داد که در آموزش های بازاریابی نوعی فرمان شروع یا حمله است حسن هم شروع کرد خب با تشکر از شما که این جلسه را ترتیب دادین عباس یه چند تا سؤال داشت که دوستش ازتون بپرسه بعد رو کرد به من و گفت خب عباس جان شروع کن همین به جان خودم همین به جای اینکه چهار کلمه حرف اسایی بزند که یخ مجلس آب بشود داشت آن وسط مجریگری میکرد. گفتم چی بگم؟ سوالهایی که داشتی؟ خود ناکستش خوب میدانست که من اصلا سوالی از کسی ندارم. اما با این کار غصداش من را لای منگنه باک سارد. گفتم پس فعلا شما شروع کنید تا من یادم بیاد. بقیه را نمیدانم اما اسکندر دیگر اعصاب این عدا اصولهای من را نداشت. برای همین با لحنی که نمیشد محکم گفت شوخیست یا جدی گفت نه مثل اینکه ما اینجوری با هم معاممون نمیشه پاشو، باشو بیا اینجا صندلی روبروی خودش را رو میگفت بشین دو ک با هم اختلاط کنیم اگر میخواستم درجه روی آن صندلی بنشینم مجبور بودم با مهناز درگیر شوم بس خاطر همین کمی صبر کردم که خودش با زبان خوش از جاش بلند شد بعد خیلی با شخصیت از روی تخت بلند شدم و روی صندلی نشستم با اینکه می توانستم همانجا دو دور دور خودم بزنم اما این کار رو نکردم اسکندر توی چشمم براخ شد با کندی لشش را روی یک دسته صندلی انداخت و کف دسته آزادش را به مچ دست دیگرش قلاب کرد و گفت خب آقای عباس آقا آماده یا نه؟ بعد سوالی رو بد جوری پرسید گفتم مگه میخواید چی کارم کنی اگر کمی مکس کرده بودم شاید میشد جواب بهتری تحویل داد اما چاره چه بود از حرفی که زدم لالا و مهناز خندهشان گرفته بود فقط سرشون را پایین گرفته بودند که رویمان تو روی هم باز نشود سروش و هم وضعی بهتری نداشتند اسکندر اولش کمی سکوت کرد ولی اوزا جوری نبود که بتواند سکوتش را ادامه بدهد پقش ترکید مثل انسان‌های پارین سنگی می‌خندید دندان‌های فاصله دارش خنده‌های ترسناکی تولید می‌کرد کمتر آدمی را دیدم که وقتی میخندد قیافش خوشگلتر نشود که متاسفانه اسکندر از همان آدم کمتر بود. لاله هم از خنده اسکندر بلند بلند از زیر خنده. جوری که معمولا دخترهای بد آنجوری میخندند. اما نمیدانم چرا هیچ این دخترک را به دل نمیگرفتن. حتی اگر خیلی بیشتر یا بلندتر از آن هم میخندید بعید بود که بخواهم از شاکی بشوم. رفته رفته اسکندر داشت به خودش ما سلط می شد و این بدترین اتفاقی بود که ممکن بود برایم بیفتد. نه ترس. کاری نمیخوام بکنم. میخوام بدونم برای پول دار شدن آماده ای یا نه؟ نه. راسته حسینی گفتم نه. گفت. نه؟ یعنی چی که نه؟ کی از پول بدش میاد؟ این شد سوال. جواب دادم. بیشکی. خب پس چی؟ چی و چی؟ منظورم اینه که چرا داری دست دست میکنی؟ چرا نمیخوای به دنیای بیزینس قدم بذاری؟ چرا نمیخوای به پولایی دروش برسی؟ من همچه حرفی نزده بودم. من فقط گفته بودم این روزها آمادگی پولدار شدن را ندارم همین. این هم یکی دیگر از پدر سوخت بازی هاشان است. اول کاری از آدمیزاد یک احمق تمام و کمال می‌سازند، بعد هرچه میخواهند بارش می‌کنند. روی همین اصل جوابش را ندادم که یا سوالش را دوباره تکرار کند یا اینکه سروشی لالهی کسی حرف را کش بیاورد لاله داشت با تلفنش حرف میزد که الان نمیدانم یک جور ژست بود یا واقعا داشت حرف میزد. شاید بعداً بفهمید چرا در موردش اینجوری فکر میکردم. سروش هم مثل این بچهایی که جلوی گندهتر از خودشان لب باز نمی کنند روی تخت پلاس شده بود حسن هم که صدا از گاو درمیآمد از این هیچی؟ اسکندر ترجیح داد دوباره شانسش را امتحان کند گفت نه جدن به من بگو در مورد پول چه فکری داری بعید می‌دونم تو هم مثل بقیه آدم از پول بدت بیاد تو آزادی مالی نمی خوای؟ شعن و اعتبار اجتماعی در آینده جوزه نداشته نیست؟ خونه یا ماشین چی؟ ببینم تو آرزو نداری یکی از همین ماشینه آخرین سیستمی رو داشته باشی که هر روز توی خیابو می بینی؟ خندم گرفت. خواستم بهش بگویم که توی خیابان‌های قلعه مرغی از این خبرها نیست که هر روز ماشین‌های آخرین سیستم دیده شود ولی حرفم رو قورت دادم او هم که دو به دستش افتاده بود و برای خودش میبفت گفت ما اینجا جمع شدیم که به همه این های بزرگ برسیم پول استقلال مالی ثروت انگار که همه این چیزهایی که تند و تند بلغور میکرد را توی جیبش قایم کرده بود تازه اینهایی که گفتم حرفای گلدرشتش بود حرفهای جالب دیگری هم میزد که آن موقع خیلی ازش سر در نیاوردم. بعد هم که سردر آوردم نصف بیشترش از کلم پریده بود. فقط عیب کار این بود که وقتی با هم صحبت می کرد هیچ احتمال نمیداد که سر سوزنی از این پول و عزت و شخصیت اجتماعی و موفقیت نهایی که میگفت، توی بسات هم پیدا شود. راستی، راجب موج سوم و روش های تازه تجارت جهانی هم چیزهایی میدانست. نه آنجوری که فکر کنید. فقط چون خیلی زیاد گفته بود خوب میگفت یعنی اگر کسی جرأت سوال کردن به خودش میداد به آنی رو میشد که این بابا چیزی بارش نیست. جوانک که احمق بدون اینکه فضا را در نظر بگیرد بحث را به قدری داغ کرده بود که هیچ رقمه نمیشد از دستش خلاص شد. حتی ذری برای اینکه آدم بخواهد نفهمد راه نمیداد. فقط یک جایی که در مورد فقر و فاصله طبقاتی در فیزیولوژی اوریان جامعه صحبت کرد فکر کردم که باید چیز جذابی باشد. اما تا آمدم گوش تیز کنم ببینم چی میگوید فوری بحث را با کلمه های به به کثافت کشید این حرفها رو به پشتوانه اینکه چیزی ازش ای سرم نمیشود میگفت. سبر هم نمی شود میگفت صبر هم نمیکرد که اگر احیاناً چیزی دستگیرم شده لا اگر کله تکان بدهم از بیخ قیدم را زده بود نمیدانم آخر آخرای صحبتش چیچی چی گفت که بعدش پرسید درسته من درست حالی نشده بودم اگر تعیید میکردم مثل این بود که گور خودم را کنده باشم برای همین گفتم درست میشه ایشالله بعد هم بدون اینکه چشم از صورتش بردارم به صندلی تکیه دادم لاله دوباره پغی زد زیر خنده دختری خلوچل نزده میرخصید اسکندر هم خنده بینمکی کرد و سرش را رو روی صفحه مانیتور چرخاند توی خنده های لاله شیطنتی بود که من را برای وضعی که پیش گرفته بودم دلگرم تر می کرد. حسن هم طبق معمول چشقرره های خودش را میرفت که محلش نگذاشتم. هیچ کس لام تا کام حرف نمیزد صدق سر این موضوع شروع کردم به سکیدن در و دیوار تا چشم به نقشه و پنس ها افتاد حالم خراب شد. بیخیالت شدم. دوباره کلم را رو به اسکندر کردم. راستش ته دلم یک کمی برایش میسوخت. داشتم کرم علکی میریختم از خودم خیلی بدم نیامد اما ترجیح دادم خودم برای آشتی پاپیش بگذارم گفتم. خب مجید جان می من سرتاپا گوشم آقا مجید هم میشد گفت ولی چون توی آن لحظه احساس کردم که اسکندر به صمیمیت من احتیاج زیادی دارد گفتم مجید جان به هر حال این دلیل نمیشد که بیگودار به آب بزند سرش را رو از روی مانیتور بلند کرد خب کجا بودیم راجب فقر و فساد و فحشا و پول و اینا بود نه بعدش بعدش؟ بعدش در مورد فاصله طبقاتی گفتی؟ نه اونا که مقدمه بود داشتم در مورد شرکت و زیر میگفتم. نه به جون مجید از فاصله طبقاتی به این بر دیگه حرفی نشد. اینام شاهدن. زلش کرده بودم. گفت. خیل خوب. باشه از همونجا میگم. باشه بگو. دوباره روز از نو روزی از نو شروع کرد به زر زدن من هم همان جور که روی صندلی نشسته بودم خودم را تکان تکان می دادم صندلی نیم دور نیم دور گرد خودش می چرخید کاری که باید بکنید این است که پاهایتان را به زمین بچسبانید بعد جوری که نشینتان روی کفی صندلی ثابت باشد کمرتان را مدام مشرق مغرب کنید آنقدر هم کیف نمیداد ولی عجیب روی اعصابش رفته بودم پسر. حتی یک بار خم شد و همان جون نشستکی دستش را رو روی صندلی من گذاشت که بیش از این تاب نخورم ولی این کارهاش هیچ اثر نمی کرد. دو ثانیه آرام میگرم و دوباره همان بساد. از آنجا که دیگر موقع حرف زدن توی صورتم نگاه نمیکرد قشنگ تابلو بود که دارد خون خونش را میخورد. هر وقتم که مجبوری چشم تو چشم شدیم سرعتم را بیشتر میکردم که حسابی مگسی شود فکر میکردم ببتیم ساعتی همین روال را پی بگیرم اما چشمتان روز بعد نبیند به ده دقیقه نکشید که سرا آخرین پیچ جک صندلی از زیر در رفت قبل از اینکه خودم در جریان باشم لاله یک جیغ لااکوریی کشید. عقب عقبکی با پس گردم پهن زمین شدم اما همش که همین نبود قبلش با درازی لنگم زیر میز کامپیوتر زدم که همه چی حسابی در با داغان شد از زیر سیگاری تا مانیتور همه چیز ریخته بود پایین چه بساتی براش درست کردم؟ لاله بلند شد و دوید سمتم تازه مهناز یادش افتاد که باید و ویغ کند چشم ترکیده کلدی چه جیقی هم کشید پرده مخم باره شد. لاله گفت: فاق چی شدی پسر حالت خوبه سروش حسن بیاین بلندش کنین جایی که در نمیکنه. زنها در حالت عادی هزار فرقه دارند اما وقتی احساساتی میشوند، همهشان یک جور میشوند. اینقدر مهربان برایم غصه میخورد که نمیدانی. استشم داشتم خودش از روی زمین بلندم کند اما حسن زیر تیام از ایره کتفم را گرفت سرش داد کشیدم اوی! آرون! آرون! فکرم شکسته انگار که دستش سوخته باشد دستش رو پس کشید چونان گند عزمایی زده بودم که اقلش باید سه رو ساعت همانجا لنگ افلاک می افتادم چون اگر بلند می فاتحم خوانده هم خانده. سروشتش تند و تون وسایل را از کف اتاق جمع می کرد. به غیر از منیتور که و شیر شده بود از بقیه وسایل میشد در موقع لزوم استفاده کرد. اسکندر دوتا دستش را محکم به دوتا دسته سندلی گرفته بود و سرش را هم تا آنجا که میشد پایین انداخته بود. موهای تلاییش در هوا تاب می و میشد تجسم کرد در حالی که با تناب روی صندلی بسته شده دوتا گلوله حرامش کردند. هم چون ریختی شده بود این حالتی که داشت به خاطر حالوگیریش نبود واقعا بریده بود نمیدانم به هوای تازه احتیاج پیدا کرد یا چی که بلند شد از اتاق زد بیرون مهناز هم مثل همه زنهای معمولی بیخاصیت دیگر دنبالش راه افتاد تا دلتان بخواهد تا حالا از اینجور جور زنهای لوس دنبال شوهر بودو دیدم لاله دوباره حسن را صدا زد حسن بلندش کن دیگه چرا واسادی هیچکس هم نه حسن، من اگر نخواهم بلند شوم از دست حضرت فیل همکاری ساخته نیست. حسن گفت، داد میکشه میبینی که؟ لاله درست قانه نشد. عیب نداره، بیا زیر بغرش رو بگیر با سروش برندش کنیم بیارینش رو تخت. عین همین حرف را به سروش هم گفت. سروش بیا کمک حسن، مجید کجا رفت پس؟ به جای این همه ارد دادن، میتوانست خودش دست به کار شبد و یه گوشه کار را بگیرد. سروش و حسن تای زیر بقلم را گرفتند و چون اسکندر از اتاق بیرون رفته بود خودم داوطلبانه از زمین جا جاکن شدم. هیچ جام هیچ طور نشده بود ولی همچی سیخونکی بلند شدم که یعنی کمرم عیب کرده است. همانطور هم سلانه سلانه خودم را روی تخت ولو کردم. شانسی که آوردم لاله دست از مهربانی بر نمی داشت. بلند شد و دو زانو پای تخت کنار من نشست. حباس جان چی شد؟ کمره درد می کنه؟ چون داشتم کف دستم رو روی کمرم میما همچه پرسید. گفتم آره فکر کنم شکسته. کمی توند رفتم. حسن گفت نه بابا چیچی رو شکسته خدا که به کمرت نزده. بیمعرفت باز خدا پدر مادر سروش رو بیامور که گفت نه حسن یه وقتی دید تاری شده باشه. کمرش خطرناکه ببریمش دکتر. اما حسن کتابی بیا نبود. دکتر نمیخواد بابا جان چیزیش نیست که یه صندلی چپ شده ها شلوغش میکنین؟ لاله دو به شک شده بود. سرش را رو دوباره رو به من کرد و گفت حباس جان دوتا گوچه پایین یه درمانگاه هست. میخوای بریم اونجا؟ پر بیرا هم نمیگفت. اگر راهی بیمارستان میشدیم خیلی طبیعی تر به نظر میرسید. گفتم نمیدونم این کمر دیگه با من کمر به نیست. که حسن ابروهایش را تند و تند برایم بالا انداخت. وقتی دید محلش نمیگذارم و تصمیم قطعی خودم را برای بستری شدن گرفتم، دستش را تا نزدیکی های سیناش بالا برد و انگشت شست و را به هم مالید. او اوه راست می گفت بسر. آه در بساط نبود. با گندی هم که بالا آمده بود نمیشد از اسکندر توقع داشت یک شاهی خرج دوا درمانم بکند. لاله به حسن گفت. حسن. come come بریمش دلم میخواست که بیشتر توی آن حالت باقی بمانم ولی به ریسکش نمیارزید ممکن بود کار از کار باگذرد. تیز از جا پریدمون نشستم نه نمیخواد. خوب شدم دیگه چیزی نیست لاله باور نکرد نه ترس آمپولت نمیزنن بولن شو. شو نه ترس. نترس گفتم کی میترسه من پس بلند شو بریم نه به قرآن خوب خوبم و برای اینکه حرفم را باور کنند یک غره نصف نیمه به کمرم دادم. این بار کمی عقب نشینی کرد. مطمئنی؟ آره به جدم. دوباره روی تخت راست کشیدم. لاله هم نگذاشت و نبرداشت، حد آمد روی تخت کنار دست من نشست. جوری که اگر مادرم یا زنم بود حتما دستم را میگرفت. جان کلام این است که خیلی مهربان و دوست داشتنی شده بود. هر چه رشته بودم داشت پنبه میشد. اگر پایم را از در بیرون میگذاشتم دیگر محال بود دوباره بتوانم به هیچ بهانهای لاله را ببینم. با این تری هم که به دم دستگاه اسکندر زده بودم تا قیام قیامت هر جا من را میدید سگ دنبالم میانداخت. من ساده را بگو که پیش خودم حساب کرده بودم حالا حالا می شود قضیه راکش آورد ولی همه چیز داشت جلوی چشمم نابود میشد. سروش که دید من در مانگاه بیانیستم دوباره مشغول جماجور کردن دسته گل من شد. اصلا هم وردستش وایستد لاله نشسته بود و داشت از پنجره بیرون را تماشا میکرد الحق که برای خودش دنیای دیگری بود اگر قرار بود دیگر لاله را نبینم این بدترین موقعی بود که میشد ازش خداحافظی کرد دم غروب لب پنجره خوابیدنکی از این طرف هم اگر میخواستم کاری صورت بدهم هم وقت زیادی نداشتم دل را به دریا زدم گفتم لاله خانم چشمش را از کوچه برداشت و من را نگاه کرد جانه یه سوالی بپرس عزیزم هم کاش این حرف رو نمیزد عزیزم چیزی نبود که من آن موقع ساعت جنبه شنیدنش را داشته باشم دلم هاری پایین نریخت اما آنجور هم نبود که ثابت سر جای خودش ایستاده باشد فوری فرص را بر این گذاشتم که منظوری نداشته است. پرسیدم، برای ورود به شرکت چقدر باستاد؟ قبل از اینکه لاله متوجه منظورم بشود، حسن کم کم نیم متر پرید بالا. سروشم طبق معمول تنها کاری که توش حرفه ای بود روی من انجام داد. آمد کنار تخت و به زحمت من رو نشاند و بغلم کرد. من هم خودم را سفت کردم که نتواند بقیه ای کارهایی را که لازم است انجام دهد. من اگر جای آنها بودم از ورود یکی مثل خودم این اینجور زغمرگ نمی شدم. میبینید که بازاریاها با آن همه زرنگی گاهی اینطور احمق قزا در میآیند. حسن بعد از اینکه همه زغغایش را کرد گفت: خم قمر باکه. پشپندش سروش هم همینها را تکرار کرد. کانگراتولیشنز. فلیسیتیشن. گفتم: "تینک یو. پرابلم." هم به حرفشان را گرفت. ایستاد و های دو دستش را توی هم قلاب کرد و گفت: فرود تو به خانواده بزرگ نتورک مارکتینگ تبریک میگم. انشالله همه با هم در کنار هم با کمک هم به آرزوهامون میرسیم. توجه داشته باشید که من فقط یک سوال خشک و خالی پرسیده بودم و اینها هنوز جوابش را نداده این همه شلوغش کرده بودند. اتاق در حالت خاصی از شادی فرو رفته بود انگار که طبقه پایین زاو زاییده باشد یا همچو چیزی. پوست سرم داغ شد. پیش آمده که وقتی عصبانی میشوم شدم پلک چپم هم بزند ولی آنجا نزد. مثل گاف هشیمان شده بودم. در زندگی ده هزاتی هست که گفتن یا نگفتن یک جمله می تواند سرنوشت آدم ها را تغییر بدهد و این از آن لحظه ها بود. خیال کردم هیجان سروش فروکش کرده باشد ولی نه دلش خواست که یک بار هم وایستاده تا پاله هایش را به چسباند. پشت به پشت هم میریم جلو داداشی. اگر دقت کنید می‌بینید که فارسی را رو همسته بلبل حرف میزد حسن هم دوباره دور برداشت. وقتی کار سروش تمام شد بغلم کرد و بهم تبریک گفت. کلم را نزدیک گوشش کردم و دوتا تا آبرودار ابرودار نزارش کردم. کمی عقب کشید اما چون احتمال داد که دارم با شوخی میکنم یک تبریک دیگر گفت و دور شد. حسن را که از سرم باز کردم به لاله گفتم: لاله خانم، پس قول میدی که ما رو تنها نذاری؟ اگه بخواین ما رو کمک نکنین دستمون به هیچ جا بند نمیشه ریشمون دست شما زایه کاری کردم اگر می بده در راه خدا خیلی شرافتمندانه تر بود لاله گفت من هر کاری که از دستم بر بیاد واسه انجام میدم میتونی از امروز رو کمک من و بقیه بچهها حساب کنی ما دیگه الان از یه خانواده ایم از تصور اینکه لابد اسکندر باید پدر خانواده باشد تنم دوندون شد درست نبود که بعد از یک عمر بی پدری همچو حالویی گیرم بیفتد. با اینکه از اول به خاطر لاله رفته بودم اما دیگر نمیخواستم بیشتر از آن آنجا بمانم. نفسم داشت میگرفت. به حسن گفتم خب حسن کار ما اینجا تمومه؟ آره دیگه اگه سوال خاصی نداریم میتونیم بریم. چه سوالی؟ هنوز جواب سوال قبلی هم را به هم نداده بودند حال و روزگارم این بود. گفتم نگفتید چقدر باز به فهم. سروش گفت. بیس پرایس پرودکت ها 600 دلاره فقط 600 اش رو فارسی گفت گفتم الاهی آمین یک بار برای همیشه باید میفهمید که اینجور حرف زدنش هیچ درست نیست لاله با خنده درآمد که منظورش اینه که کف قیمت محصولات حدود پونصد و 34 هزار تومنه اما شانسی که تو الان داری اینه که محصولات توی تخفیف این شد حرف حساب گفتم الان ارزونه ارزونه چقدره حسن چندتا تا روی ماشین حساب اسکندر زد و گفت میکنه به عبارتی سی و, و, و دویست و با خورد و پوردش معلوم نشد اسکندر کدام گوری بود ولی باید قبل از اینکه دوباره باش روبرو بشم بونکن می کردم بالال خداحافظی کردم فکر می با سروش هم دست دادم و از اتاق زدم بیرون سروش دنبالم راه افتاد و مقدار مشخصی زرزه هیچ گوش نکردم که چه دارد میگوید. دوستشم حسن را قَال بگذارم و تنهایی برگردم. اما شدنی نبود. پس رفاقت کجا میرفت وانگهی یک پاپاسی پول هم ترجیبم نبود. برای همین سر کوچه صبر کردم که او هم برسد. از دور سروش را میدیدم که حسن را محکم چسبیده و دارد توی بغلش تکان تکانهای آخر را میخورد حسن هنوز به من نرسیده از وسط های کوچه داد کشید. آقا تبریک تبریک مبارکه طاقتم تاق شد چی مبارکه هستن؟ مگه عروسی عمت این مبارکه مبارکه؟ آدم میکشین تو مکاس چورتایی میرزی سرش بعدم به زور دگنک از آدم حرف میکشین حالا این می مبارکه مبارک مبارکه خیلی عصبانی شده بودم اما این حرفها را حتی وقتی که عصبانی هم نباشم میزنم. به این چیزهایی که بارش کردم اعتقاد قلبی دارم. حسن کمی فیلاش را پایین کشید. هو حالا! هرچی اون تو نتونستی بگی بیا سر من خالی کن خودت قبول کردی من؟ من حسن؟ من فقط یه فی گرفتم ببینم مزنه بازار چیه شما باید اینجوری کنین؟ فی چی گرفتی؟ مگه تو نمیدونستی واسه ورود چقدر بد داد؟ نه از کجا بس میدونستم؟ تو که تویی از رو ماشین حساب فهمیدی؟ همون روز اول تو خونه ما مگه حادی نگفت خوب میدونستی؟ تو بیجا کردی که من میدونستم این را که گفتم کمی سبک شدم. حسن گفت: دهمت که همه همیشه همین است. هر وقت که ازم دلگیر می شود یک آقا پس اسمم اضافه می کند." گفتم: خدا من الان چیکار باید بکنم حسن؟ تو وضع منو نمیدونی. برم از کجا پول جفت و جور کنم؟ کی میاد این همه پولو بذاره کف دست من؟ تو زمین یکیو که ندارم. بعدشو بگو. همین فرداست که دوره بیفتم پی این و اون لفتو لیس کنم، دنبال زیر بگردم." حرفم رو که زدم توی صورتش نگاه کردم برای اینکه کار بالا نگیره جوابم رو نداد گیافش حتی شبیه آدم های مقصر هم نبود خودش این قیافه رو برای خودش درست کرده بود که بیشتر از یک حدی نشود به جانش قرب توی راه سعی کردم توی این اتفاق چیزی کشف کنم که به درد لای جرز بخورد ولی نمیشد همه چیز خیلی سری پیش آمده بود اتفاقی و در یک لحظه مثل یک عثسه بی موقع. سر کوچه خودمان که رسیدیم حسن برای خداحافظی دستش را درست کرد. به جدم اگر قصد داشت یک بار دیگر تبریک بگوید یا روبوسی چیزی راه بیاندازد یک بادمجان احساسی زیر چشم چمش می کاشتم شاید باور نکنید ولی آن شب از لحاظ روحی حتما این کار را می کردم قبل از اینکه وارد خانه بشوم چشم پلکاندم دیدم آن یکی سر کوچه که به ده متری میخورد کلی شلوغ پلوغ شده است همینطور جمعیت بود که توی هم میلولید از دور متوجه هجله شدم که داشتن سر کوچه کار میگذاشتند. بودو بودو رفتم که تو کار را در بیا برم. بوی اسفند و کندور همه جا را پر کرده بود. تا عکس اعلامیه را دیدم قضیه تا آخر دستگیرم شد. داشتن هجله ای رضا را میبستند. دور از جان زبانم لال همسن خودم هم بود. از بچهای ده متری. نیمه شبان که رفته بود تاق نسرت بزند از بالای داربست پرت می‌شود روی آسفالت. حالا هم بعد از چند ماه توی کما و این برانور بالاخره ریغ رحمت را سر کشیده بود. پدرش جلوی هجله ایستاده بود و بنده خدا های های گریه میکرد. ملت هم یکی یکی توی بغلش می رفتند و بهش سر سرسلامتی می گفتند و فیلمی قوره می چلاندند. فقط جای سروش خالی بود. نوبت عبالفست کبابی که شد بابای رزا را بغل کرد و گفت قا آخرت باشه قوی باش مرگ دست خداست. حرف خیلی بیخودی بود. مردم بیشتری وقتی که جوانی، بچهی کسی می میرد، مرگش را گردن خدا می اندازن. ولی مثلا نشنیدم پارسال کسی مرگ شعبون مرغی را که توی هشتاد سالگی زبانش به سقش چسبید به خدا ارتباط بدهد. تازه این بابا قبلش سه تا سکته ناقص هم زده بود که سر سکته آخری شش ماه سکندری میزد. خدا اگر میخواست می‌توانست سر همه سکته اولی دخلش را بیاورد. اگر بخوایید بدانید همه قبول دارن که زندگی صد در صد دست خداست. اما وقتی پای تلفات وسط می آید، فقط مرگ بچه ها و جوان های ناکام یا تصادفی ها رو روی دست خدا می گذارند. من که معتقدم همه چیز دست خداست. این ما آدمهاییم هاییم که همیشه یک جاهایی را نمی بینیم. رفتم جلوی هجده که یک فاتح و قلح با الله و دوتا سلوات بدهم اما وقتی دوباره چشمم به عکس رنگی رزو افتاد آتش برای همین هفت هشت تا فاتحه بیشتر دادم. به چند نفرم که آن اطراف میپلکیدند خدا بیامرزی گفتم. چند دقیقه همان اطراف برای خودم ول چرخیدم که برکه دلی از ازادر در بیاورم. اما به من گفتند به جایش فردا ظهر بیایید نهار بخورید. نقداً با یک جبه خرما سرتای قضیه را هم آوردند. من هم گرد کردم سمت خانه. نمیشد که شب را جلوی در مردم بخوابم. طبقه دوم نرسیده سر پیچ پله مامان خفتم را گرفت. از کجا بودی تو این موقع شب بیرون؟ کدوم بیرون؟ با کی بودی با حسن لا اله الا با حسن حسن مگه مثل تو بیکار و بیاره که راه بیفته تو خیابونا خبر نداشت که همه این آتش ها از گور همان حسن بلند می شود گفتم راستی رضا مرد مامان رضا رضا کیه رضا داداشت سفتر ترکیه که از بالای تاق نصرت افتاده بود پایین اون سه ماه پیش مرده بود نه تو کما بود مثل که امروز تموم کرده مامان آه خانمان من برندازی کشید و گفت اه, اه, اه, اه, اه تفلکی. به خدا قسم الان خودم اونجا بودم بیچاره مامانش ببینی الان داره چی میکشه میبینید اگر توی این خانه بی پیر لعنتی طرف حساب فقط مامان باشد چقدر همه چیز سری رو به راه میشود بدبختی آقا جون و شاباجی مثل مامان با آدم تا نمی گفتم راستی مامان پول داری؟ پول واسه چی؟ تو بگو داری یا نه؟ نه چه احتمال نداشت این رو را برای این پرسیده باشم که اگر مامان پول ندارد بهش پول خرص بدهم برای همین هم بود که یک نه گفت که نه ماه شکم نکشد با اینکه آن هم اتفاقات ریز و دروش سرم آمده بود اما خیلی عجیب بود که شب را خیلی راحت خوابید